خدایا مست این گلزارم میشد اگر خوابم مکن بیدارم امشد دارم خواب میبینم یا بیدارم این منم کربلا نیشد من کجا رو به حسین کجا من کجا قمر بالی ها کجا با من کجا جای پای زیراب کجا آه کجا جای پای روکه کجا با آه باه باه باه اگر خوبم نکون بیدارم اگر خوابا خدایا چه غم از دین جون دلم از قص سرابریز از این حالا آماده چند قد روزه گوش بدید بسم الله هرچی قد جیگره چوخ بلنگریه کن دلم از بس لحب ریزه از به گوش قلب من او قاست اینجا صدای ناله زهرا کوشید لاتو اگه پرده اگه کنار بره, بره میشنه بی حال داره, بلوز بلوز داره بلوز میگه بلوز غریب مادر. غریب مادر، غریب <تصفح> مادر. <قریب> آه <مادر. تصفح> این کار بله؟ شم نتی خدا به من. و تو از خودش میدونه حضرت ورمود اونایی که کربلا نمیرن و قسمتشون نمیشه فردا اگر به هشتی هم باشن مثل مستجرن از خودشون خونه و چیزی ندارد. اما اونی که کربلا میره از خودش خونه داره آه آه. آه آه آه آه آه. ساکت میشینی کربلا؟ ناله میزنی می کربلا می حال چیه؟ حاله. بعضی اصلا شکر, شکر. منم کربلا این همونه آن آن که شنیدم حضرت مود وقتی از خونت میایی به قصد کربلا بیرون ادها ملک تو رو مشایعت و ازدقبال و همراهی میکنن رفت و برگشت رفت حضرت فرمود وقتی خوند رسیدی ای ملائک برمیگردن اما تا نزدیک دو سال به جای تو زیارت میکنن اینجا فکر نکن اومدی شهر روز رفتی تموم شد به نیابت تو ملائک و خدا میفرزده زیارت, زیارت کنم یا زهرا, زهرا. بذار از این مهمترش رو بگم امشب این که اینجوری داری استقبال میکنی هر مود وقتی نفر میره کربلا یا <تصفيق> <يا> الله <تصفيق> ببین چه قبره <تصفيق> وقتی یکی میره کربلا زائر آقا میشه خود ابی عبدالله در عالم بالا مدام به کربلا نگاه میکنه مدام به گودی قتل نگاه نگاه میکنه هر زائری که بیاد و سلام بده دستاشو میبره بالا براش دعا میکنه براش اظهار میکنه حالا اینو داشته باش این جیگر تو بیشتر می سوزونه این تموم نشد نه صدا می یا رسول الله شما بر زایر من دعا مادر یا زهران بابا یا علی داداش از شما بر زایران داگو.